اعوذ الله سمی العلیم من شیطان اللعين الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لله رب العالمین از صلاة و سلام علی نبینا و آله تاهری خب خدمت عزیزان دانشجو خودم عرض سلام دارم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 حال الان سه نفر ما در کلاس خودمون داریم و تعداد نفرات خیلی خلاصه کم شده ما در قصیلهی که با هم میخواندیم در مدح کافورخشیدی، به این بیت رسیدیم نجوز و ها المحسنین الى اللذی نرا انده هم احسانه و العیادیه نجوز علیها نجوز علیها محسنی نه اینال لذی نرایند درهم احسان او خود یه دقتی در دید بکنید علیها ها زمیرش برمیگرده به همون اسبانی که توی ابیات قبل ایشون اگه یادتون باشه توصیفشون کرد اسبانی رو که گفت ما باهاشون هاشون علیها ها یعنی علا تلک الخیول یعنی بر اون هست خوب نجوزا یعنی نعبرو عبور میکنیم المحسنیل کسانی رو که احسان کردن یعنی میگذریم عبور میکنیم از کسانی که به ما احسان کردن منظورش سیف الدوله هست و دربار سیف الدوله که قاعدتا المحسنین یعنی نجوزا یعنی نتخط تخطا یعنی تخطی کرد عبور کرد نعب رو الان من سعی می کنم لغات رو به معادل های بهتون بدم که لغت یاد بگیرید نجوزا نتخط تا بطای معلفت تای توتی تخط تا یتخط تا تخطیان یعنی عبر یعبر او علیها یعنی الالخیل الخیل یعنی اسفان ایادی رم معنا کنیم ایادی جمع عیدیه عیدی جمع یده یعنی دست ولی اینجا منظور یعنی نعمت لطف دست به طور مجازی به معنای نعمت و اینها میاد و به معنای قدرت هم میاد از میگه میگه الله فوق عیدیه یعنی قدرت خدا بالاتر از قدرت های این هست ید به معنای نعمت هم میاد دست فلانی نبود ما حلاک شده بودیم یعنی نعمتش نبود درست شو. اینجا به معنای مجازی یعنی نعمت و گفتیم محسنین منظور سیف و دوله هست و عشیره و کسانی که در کنار در دربارش تو حلب بوده این علیه حال است برای فائل نجوزو یعنی نجوز و راکبین علیها. ها بر این اسبان می گذاریم. این افراد محسن را افرادی که به ما لطف داشتند را میگذریم به سوی که میریم الان لذیر به سوی کسی که منظور کافوره به سوی کسی که نرا اندهم احسانه, یعنی یعنی یعنی انده احسانه و عیادیه یعنی و عیادیه او اون عوض از مضاف ونری یعنی ایادی او اون چون خواسته قافیه شعر درست شه اون الف آورده یعنی نرا اندهم احسانه و عیادیه او میریم پیش کسی که نرا اندهم میبینیم پیش او پیش اونها احسانه و لعیادی ها پیش کسی که میبینیم نزد اونها یعنی محسنین خب احسانه و لعیادی ها احسان اینو عیادی اینو گفت ما از این آدم هایی که تو حلب هستن میگذریم میریم پیش کسی که احسان و نعمات او رو پیش اینها دیده بودیم یعنی اینا خودشون این محسنین جیرخار او بودند. منظورش اینه که کافور بالاتر از سیف و دوله و درباریانشه جوری که سیف و دوله و درباریان جیرخار کافورند ما میریم پیش کافوری که بالاتر از ضعیف و دوله و درباریانش خب هم, هم به کی بر به محصدی احسانه هو چیه؟ مفعوله نرا نرا احسانه هو به کی میخوره؟ الگزی یعنی کافور پیش کسی که کافوری که احسان و نعماته او میبینیم اون احسان و نعماته او رو اندخون پیش این محسنین یعنی سیف و دوله و دار و دستش یعنی سیف و دوله و دار و دستش هم جیرخار کافور هستند خیلی خلاصه با خودمون تنه و و تعریض عجیبی زده به آقای سیف الدوله و دستش که اینها خودشون جیرخا و نوکر کافورند ما میریم کشه اونی که اصله میشه اونی که اصله خب میکنم که مشخص شد براتون که خلاصه چی گفت نجوز و علیها نجوز و علیها المحسنین این علیها گفتیم حاله یعنی چی؟ یعنی راکبین علیها میگذریم در حالی که بر این اسبان سواریم المحسنین یعنی اونهایی رو که به ما لطف انایتی داشتند، میگذریم از اینها الاللزی به سوی کافوری که نرا میبینیم انده پیش این محسنین احسان او رو و نعمات اون رو بعد از اینکه ترکیب عبارت رو فهمیدیم لغات رو فهمیدیم دیدیم خیلی بیت راحت شد فهمش فتن, فتن. ما سرینا این ظهور جدودنا الی اصرهی الا ترج تلا دیا جدود جمع جده جد یعنی حز یعنی بهره شامس دو فتن یعنی هو فتن او جوان مردیست کیا میگه همون کسی که گفتش میریم به سویش اللذیه بیت قبل یعنی کاخون او جوان است انگار گفتن اون کیه که احسان او رو شما و نعمات او رو پیش سیف و دوله و دار و دستش میدیدی گفته او جوان است. ما سرینا سرا یسری یعنی شب پیمایی کرد یعنی سار لیلا سرا یعنی سار غیدا سرا و اسرا یعنی سار لیلا در داریم سوره اسراء چون پیامبر رو خدا شبانه به معراج برد ما سرینا ظهور جدودنا الا اصرهی الا نرج تلا بیان نرجی رجا یرجو یعنی امید داشت رجا یورجی یعنی خیلی خیلی بگید امید داشت باب تفعیل برای مبالده رجا یورجی این نرجی فعل مزاره بعد از اله این جمله حاله یعنی مرجینه ببینید جدود جمع جده جد یک معناش به معنای بهره نصیب شانس که بهره و نصیب یک معنای جد هم که میدونید دیگه یعنی پدر بزرگ خب نگاه کنید با هر دوتا معنا کردن اینجا با هر دوتا معنا کردن اول من با اینکه جد به معنای پدر بزرگ باشه معنا میکنم که جدود بشه پدر بزرگان من. اجداد من. که جدود به معنای اجداد باشه میگه که ما سراینا میگه او جوان مردی است که ما سراینا حرکت نکردیم ما زیر ظهور ظهور جم زهر یعنی پشت اسلاب جم صلب یعنی کمر پشت اسلاب حرکت نکردیم ما در پشت اجدادمان الا اصرهی تا زمان این شخص یعنی همین آقای گاهو الا مگر اینکه نرج طلاقیه یعنی نرجی او، یعنی طلاقیهنا یعنی ایاهو طلاقی ملاقات کردن خودمون با او رو یعنی ما از پشت پدران از اجدادمون همینطور منتقل شدیم ها تا اینکه در این دوران برسیم به ملاقات کردن کافور مبالغه از این بالاتر یعنی ما در صلب و پشت پدران خودمون بودیم و همینطور منتقل شدیم این جنهای ما همینطور از اجدادمان منتقل شد منتقل شد تا به ما برسه تا اصر این شخص که کافور است ما این سیر رو در پشت پدران خودمون انجام ندادیم مگر در حالی که امیدوار بودیم اونم شدیدن نرجید که نوراجی از طلاقیا که شده اتلاقیه اتلاقیه اتلاقیه از طلاقیا از طلاقیا از مضاف یعنی طلاقیا نا ایا برخورد خودمون با او یعنی ما از چند نسل قبل همینطور از پشت پدرانمون منتقل شدیم از جد جدمون به جدمون از جدمون به پدرمون از پدرمون به ما رسید تا رسید به اصل کافور و همه این انتقال نطفه ها از اجداد تا الان نبوده مگر در حالی که ما امیدوار بودیم شدیدن به ملاقات با کافر اون موقع ظهور میشه جمع زهر یعنی کمر جدود میشه جد یعنی پدر بزرگها. درست شد الا یعنی اصل کافو الا نرژیون ما سرعینا ما مامای نافیه مامای نافیه مبالغه کرده گفته ما ژنمون از اجدادمون همینطور منتقل شد تا رسید به ما از پشت پدران رسید به ما و این حرکت جنها تا رسیدن به کافور نبود مگر در حالی که ما علاقه من بودیم رو ببینیم یعنی علاقه به دیدن کافور از نسلهای گذشته ما همینطور منتقل شده تا در این عصر ما شانس آوردیم اصل کافور شدیم و ملاقات کنیم با کافور این معنای اول که حرکت کردیم منتقل شدیم یعنی نطفه ما از اجدادمون همینطور منتقل شد تا این دوره و این نبود مگر اینکه ما شدیداً امیدوار بودیم که ملاقات کنیم آقای کافو برست شد؟ حالا اگر بخواهیم معنای دیگه بکنیم اون چطوره؟ اون اینه که معنا این بشه که ما حرکت نکردیم ما سر اینا. ما حرکت نکردیم بی ظهور جدودنا در پشت شانس های خودمان ما نپیمودیم در پشت شانس های خودمان اینا اصرهی تا زمان این آقای کافور مملکت کافور مگر در حالی که امیدوار بودیم ملاقات با او رو یعنی چی؟ یعنی اومده درست شد یعنی اومده گفته ما بر مرکب شانسمون نشستیم در اصر این آقای سیف الدوله ما حرکت نکردیم بر مرکب بهره و شانس و اقبال خودمون مگر در حالی که امیدوار بودیم به او برسیم یعنی شانس ما شد ما پیمودیم. تیم، و این شانس رو هم داشتیم که شدیدن ملاقات کنیم امیدوار بودیم شدیدن ملاقات کنیم آقای کافور اخشیدی رو ناردچی در هر دو صورتش حال است از برای نای سر اینا. درست شد؟ اینجا فی ظهور جلود نا یعنی در واقع مجازه یعنی ما بر مرکب شانس خودمون حرکت کردیم ما بر مرکب شانس خودمون حرکت نکردیم در اصر در اصل کافور مگر در حالی که امیدوار بودیم یعنی ما آدم های خوششانسی بودیم و تونستیم بر مرکب شانس سوار بشیم بر مرکب خوشبختی و سعادت سوار بشیم و این نبود مگر در حالی که ما میخواستیم ملاقات کنیم کافور حالا هر کدوم از این دوتا اون موقع فیز ظهوره سر ایناش میشه واقعا حرکت کردن یعنی پیمودیم از پیش سی تا برسیم به این آقای کافور اما ما بر چه مرکبی نشستیم بر مرکب خوششانسی یعنی ما بر مرکب خوششانسی خودمون نشستیم بر پشت خوششانسی ها نشستیم شانس آوردیم در عصر آقای کافور و این حرکت ما بر مرکب شانس نبود مگر در حالی که دوست داشتیم ملاقات کنین آقای کافر بلا هر کدوم از این دوتا رو تشخیص دیم درست شد؟ پس در مورد اول میشه چی؟ ما نطفه ما در پشت پدران ما همینطور منتقل شد منتقل شد منتقل شد, منتقل شد تا عصر کافور. و این حرکت نبود مگر در حالی که امیدوار بودیم برسیم یعنی امیده برسیدن ملاقات کافور باعث شد که ما در اصلاب پدرانمون به حرکت در بیایم تا اصل کافور معنای دوم میشه ما تاختیم مسافات زیادی رو سرنا درست شد و بر پشت مرکب شانسمون نشستیم تاختیم تا عصر آقای کافور و این تاختن ما نبود مگر به خاطر اینکه امید داشتیم با او ملاقات درست شو اون موقع توی این صورت دوم ما سرنا فی ظهور جدودنا این فی ظهور جدودنا یعنی راکبی نفی صدوره فی ظهور جدودنا حال یعنی حرکت نکردیم در حالی که سوار بودیم بر پشت مرکبهای شانس حرکت نکردیم تا عصر کافور یعنی تا مملکت کافور مگر در حالی که امیدوار بودیم به ملاقات باو یعنی ما حرکت کردیم مسافت طولانی از خلب تا فستاد رو پیمودیم در حالی که سوار بودیم بر خوششانسی حرکت کردیم تا اصر کافور یعنی تا دوره کافور یعنی مملکت کافور و این حرکت کردن ما و سوار شدن بر مرکب خوششانسی نبود مگر در حالی که ملاقات میخواستیم بکنیم امیدوار بودیم شدیدن به ملاقات کردن آقای کافور اخشیدی آه. حالا هر کدوم از این دوتا رو شما خواستید بپاز. در صورت اول که به معنای در پشت پدرانمان حرکت کردیم، اون فی ظهور متعلق به سرنا میشه. در صورت دوم اون حال است از وائل سرنا، یعنی ما پیمودیم در حالی که بر مرکب خوش شانسی سوار شده بودیم استعاره است خب اینم از این شما کدوم که از این دو تا معنا رو بیشتر پسندیدید دیدید آه. یعنی ما با کمال خوش شانسی از تو معنای دوم با کمال خوششانسی که بر مرکب خوششانسی نشستیم مسافت طولانی رو تیمودیم تا به فسطات یعنی اله تا به فسطات برسیم و این نبود مگر در حالی که ما امیدوار بودیم ملاقات با کافف خب؟ این هم عظیب. خب فتن ما سرهی في ظهور جدود نایل هستیه الا نرج تلا بید. بریم بیت بعد طرف فعال اون المکارم قدروه فما يفعل الفعلات الا ازاری اون جمع اوانه زن شوهردار قانومی که شوهر دارد بهش میگن اوان جمعش اون دلست ازاری جمع ازراقه یعنی دختر دوشیزه یعنی زن شوهردار دار دختر و دوشیزه حالا بخونیم ببینیم این دوتا لغت رو که سخت بود بهتون گفت طرف و اعن اون المکارنه قدروه قدروهو طرف فما یفعل الفعلات الا ازاریا فما يفعل الفعلات الا ال اون گفتیم جمع اواند کسی که شوهر داره خلاف بکر بکر یعنی دختر که ما تو فارسی میگیم باکره، ولی ولی که کلمه صحیحه شد فعلات جمع فعل است خب این مستر دیگه فعلت یعنی یک هم دادم مثل ضربت هم. اگر می‌بینید وسطش ساکن شده فعلات میخونیم فعلات بوده مثل ضربه ضربات بگیم زرباد به خاطر وزن شهر وسط ساکن شد ازاری جمع ازرا یعنی دوشیزه یعنی بکل میگه طرف فر ان اون المکارم یعنی المکارم ال اون اون المکارم از نوع اضافه صفت به موصوفه قدروه میگه بالاتر است ارزش کافور از چی؟ از مکارمی که دست خورده مکارمی که به خودمون به ازدواج کسی در اومده مکارم یعنی فضاحت اونه مکارمی که اونه مکارمی که قبلا کسی اونها رو به عقل خودش در آورده. این ارزشش بالاتر از اینه که قدرش که یه چنین کارها یعنی اون کارهایی که دیگران کردند و انجام دادند و به اسم اونها شده در عقد اونها هست آه. این مکارمی که در عقد دیگران هست این طرف ها از اونها خیلی بلند مرتبه تر از قدرش یعنی این کارهایی که خوبه و دیگران انجام دادن در عقد خودشون دارو این خیلی مقامش بالاتر از اینه که بخواد از اون نوکارا بکنه فما یفعل الفعلات الفعلات مبعود این دفعات رو انجام نمیده کارها رو انجام نمیده الا ازار یا مگر اینکه بکر باشند یعنی این مکار مفضائل بکر دست نخورده کسی تا حالا به فکرش نرسیده نو no. درجه یک انجام میده مکارمی که دیگران با قول خودمون انجام دادند و بهبه و چهچهش هم شنیدند این اصلا مقامش بالاتر از اینه که بیاد کارهای خوبی رو بکنه که دیگران هم انجام دادند فهمیدید گفت؟ میگه مکارم و فضائل رو اومده تشبیه کرده گفته مکارم و فضائل یه ادهشون به عقد دیگران در اومدن این ارزشش بالاتر از اینه که بره اونها رو بگیره بلکه این مکارم و رو میگیره که تا به کسی دستش به او بگو نرسیده دوشیزه است نوه گرفتید انشاءالله فهمیدید این از طرف فعه یعنی بلند مرتبه تر از رفی تر از طرف فعه بلند مرتبه است قدروه و ارزش آقای کافور از چی بلند مرتبه است؟ ان المکارم مل ال اون اون المکارم از نوع اضافه صفت به منصوفه یعنی ان المکارم مل ال اون از مکارم و که اونه یعنی در عقل دیگرانه می‌جانون، او رو انجام دادن و به و و هم مردم گفتن این از اون کارا نمی‌کنه. فما یفعل الفعالات الفعالات جمع فعلات یعنی این کارها را انجام نمیده. ها؟ دفعات رو انجام نمیده، مکارم رو انجام نمیده الا عذاریا مگر اینکه بگید بکر باشند دست نخورده باشند و کسی تا حالا عقلش به اون کارها نشد. فضائل این همه منحصر به فرده فضائل این همه منحصر به فرد فما یفعل الفعالات الا ازاریا کارها رو انجام نمیده مگر در حالی که بگو مگر در حالی که اونها منحصر به فرد خودشان بکرد خب فهمید هم عن طرف اون المکارمه که گفتم بوده المکارم ال اون آه. مکارمی که به عقد کسان دیگه در اومده یعنی اونها قبل از این انجام دادن و متعلق به اونهاست فما یا الفعلات گفتم این فعلات بوده وسطش ساکن شده به خواهد وزنشه فما یفعل ها این کارها رو دفعات کارش رو انجام نمیده مگر در حالی که این ازاریا حال است از برای الفعلات مگر در حالی که بکر باشند یعنی تا به حال کسی جرعت این کارها یعنی فضائلی رو انجام میده که تا حالا کسی جرأت انجامش رو نداده یا اصلا به فکرش نمیرسیده اما فضائلی که دیگران انجام دادن مثل کمک به یتیم مثلا آه. یا پول دادن به شاعر یا نمیدونم کمک به فقیر این نوع کارهایی که دیگران انجام دادن یزرت یعنی پیش پا افتاده است این ارزشش بالاتر از اینه که از این کارا بکنه این کارهایی رو میکنه که تا حالا کسی جرأت انجامش رو نداشته خب فهمیدیم اینو فمایه فعلو پس انجام نمیده کارها رو مگر در حالی که تا حالا کسی انجامش نداده مگر تا حالا کسی انجامش نداد. خب فهمیدیم اینو خیلی سختم نبود و داد این فهم که فمایف الو یعنی بنابراین انجام نمیده کارها رو مگر در حالی که بکر باشه. مگر در حالی که تا حالا کسی اونا انجام نداده باشه. خوبینم فهمیدیم. خب بریم سر بیت بیت بر یو بیدو یو بیدو عداوات البغاته یه لطفهی فا این لم تبت منهم عبادل عبادل عبادل عاو دیر فإن لم تبد منهم هم عبادل عبادل عاو یکی دو تا کلمه ای رو که حالا ممکن است که نیاز باشه من بگم میگم بعد دیگه بلدید عادی جمع عدای اعدا جمع ادفه یعنی دشمن اینو بلدید درست شد جمع باقیه مثل قضاد جمع غازی یعنی متجاوز موقات جمع باقی یعنی متجاوز باد یعنی حلکه باد یبیدو یعنی حلکه این هم یاد گرفتید خب عباد یبیدو یعنی چی؟ یعنی اهلکه یهله یهلکو پس باد یعنی حلکه مزارش یبیدو یعنی یهلکو میره به باب افعال میشه عباد یبیدو یعنی چی؟ یعنی احلکه یهلکه یعنی حالات کرد این لغت رو گفتم عداوات جمع عداوته این هم بلدید یعنی چی عداوت؟ یعنی دشمنی لطف هم که میدینید دیگه فارسی هم همون لطف. خب فکر بکنم لغت کردم معانی که رو بیان کردم دیگه بتونید معنا کنید یه یوبیدو یوبیدو یعنی این کافور زمین قوتوش میخوره به کافور یعنی چی یوبیدو؟ یعنی حلاک میکنه نابود میکنه کافور اخشیدی عداوات البغات مفعول یوبیدوست دشمنی های متجاوزان را دشمنی های دشمنان متجاوز را حلاک میکنه به لطفهی با لطف خودش نابود میکنه دشمنی دشمنان رو متجاوزان رو با لطف خودش یعنی کافور ایخشیده انقدر کرم داره دستی به سر گوش دشمنان خودشم هم میکشه دشمنی اونها رو با لطف خودش از بین میبره نجالا غمانه. حالا اگر یه دشمنی خیلی خیلی دشمنه فهم لم تبد تبد زمیرهیش میخوره به عداوات فهم لم تبد این عداوات منهم، هم, هم میخوره به بغاد حالا اگر این حل دشمنی ها نابود نشد از این متجاوزان یعنی هرچی لطفی ها اونها شده هر چی این کرم کرد اونها بدتر عرزیتر شدن و لم تبد من هم عبادل اعادی میکنه همه دشمنان رو میگه دشمن مثل قده سرطانیه این با لطف خودش سعی میکنه دشمنی اونها رو از بین ببره حالا اگر یک موقعی این دشمنی اونها از بین نرفت این هر چقدر لطف کرد نشد اینجا چه میکنه؟ ع... عباده یعنی اهلک حلاک میکنه علی عادی ها همه دشمنان ها از بی خوبون میکنه یعنی این اینجا نیستش که هر کسی دشمنی باهاش داره شمشیر رو بکشه و بره به جنگش جنگشو از دم تیغ بگذرونتش نه این اول با لطف و کرم سعی میکنه دشمنی های اونها رو از بین ببره با لطف دشمنی ها را از بین میبره دشمنی های دشمنان رو متجاوزان رو ظالمین رو اما اگر اون دشمنی ها از اونها تموم نشد حلاک نشد از بین نرفت عبادل عادی ها حلاکت میرساند تمامی دشمنان رو درست شد؟ پس اگر دشمنان با لطف این دشمنیشون تمام نشد پرروتر شدند، شدن بدتر دشمنی کردن اینجا اونها رو ریشه کم میکنه اینا دیگه قابل درمان نیستن یوبید و عداوات بغات به لطفی یعنی با لطف خودش دشمنی های متجاوزان رو حلاک میکنه یعنی, حلاک میکنه یعنی از بین میبرد و این لم تبد حالا اگر دشمنی ها از بین نرفت من هم در حالی که از این متجاوزانه دشمنی هایی که از این متجاوزانه است از بین نرفت هر چقدر این لطفی کرد از بین نرفت عبادل عادی ها چکار میکنه؟ بگو حلاک میکنه تمامی اون دشمنان رو اون موقع از بیخوبان ریشه اونها رو میکن بشایین بود بریم ویت بعدی ابل مسک ابل مسک مشک عربی میشه مسک مسک اون مشک است که بوی خوش دارد به این کافور میگفتن ابول مسک یعنی مشکین آه. یعنی کسی که بوی مشک میده چون مشک هم رنگش سیاهه اینم سیاه بوده بهش میگفتن ابول مسک یعنی مشکی مسکی ابول مسک یعنی یا ابول مسک منادای از حرف ندا زلوجه و لذی کنتو کنتو کنتو هستش تائقن علیه و زلیوم و لذی کنتو راجیه و زلیوم و لذی خوب میگه ای آقای کافور قشیدی ای ابول مسک یعنی ها ل وجه زا اسم اشاره است یعنی ها الوجهو یعنی یعنی صورت این صورت یعنی صورت شما الی چیزی است که کنتو طائقا تایغ طائق یعنی عاشق شیفته کنتو طائقا الیک من شیفته شوم یعنی همه کوبیدیم اومدیم اومدیم خواستیم روی مبارک شما رو ببینیم آقای کافور اخشیدی ای عبولمسک این صورت چیزیست که من شیفتش بودم آشه و و زلیومو و این روز این روز که اومدیم خدمت شما رسیدیم و زلیومو یعنی ها زلیوم اللذی کنت راجیم. همون روزیه که من امید داشتم راجین یعنی راجین ایاهو امید به او داشتم من از خدا این روز رو میخواستم از خدا این قیافه رو میخواستم از خدا میخواستم که این قیافه رو به من نشون بده از خدا میخواستم که این روز رو امید داشتم ببینم. آهای کافور من تمامش پهلاون دیدن چهره شما و بگید. این بود که این دوره شما رو من درد کنم این وقتی که من خدمت شما بسه من آشقه این بودم یه روزی بیام خدمت شما امیده به این داشت و عاشق این بودم که یه روز این چهره مبارک شما رو ببینم خب اول اونست که و لذی زا مبتداست الوجه و عطف بیانشه لذی خبرش این چهره چیزیست که من آشقش بودم ما زل وقت و الازی مثل و این وقت و زمان اون وقت و زمانیه که من بهش امید داشتم که یه روز انشالله من اینو تاقه الیه با اله میاد تاقه الیه یعنی اشتاقه الیه اشتاقه یشتاقه یعنی اشتیاق داره عاشرش اشتاق الی معادلش آه، آه، آه. خود این هم فهمیدیم چیز کاسی نداشته درست شب بیت وعد رو ببینید لقیتون مرورا و شناخی بدونه و دونه و جبت و حجیرن یتر و کل ما اسادیا. مرورا جمع مرورات اون تا میافته مثل بغرتون که تاش میفته میشه البغر یعنی گاوها ها این هم مثل شجرتون یعنی یه درخت از شجر یعنی درختان خب مرورا جمع مرورات یعنی صحرا سهرای بیاب و علم. یعنی صحرا صحرای بیاب و علم. شناخیب یعنی قله درست شد واحدش شنخوب یا شنخوب مثل اسفور جمعش اسافیر یعنی گنجش درست شو. شنخوب شنخوب یعنی قلعه کور جمعش شراخی جوب تو یعنی پیمودم جاب یا و یعنی پیمود در نوردید جاب یا و مثل قال یقول جوب تو یعنی پیمودم در نوردیدم حجیر یعنی وقت ظهر شدت گرما گوش میگن حجیر صادی یعنی تشنه صدیان یعنی تشنه مؤنثش صدیا یعنی تشنه امراۃن صدیا یعنی زن تشنه رجلون صدیان یا یعنی سادی یعنی مرد تشنه دیگه لغتی داره که نگفت نه خوب حالا اگر لغاتو گرفتی دیگه معنای بیت راحته دیگه میگه لقیت و المرورا و شناخیب یعنی برخورد کردم با صحراها و شناخیب و قله کوها یعنی پستیها و بلندیها برخورد کردم دونهو در مقابل رسیدن به کافر یعنی تا بیام به تو برسن بیابان و کوه رو پشت سر گذاشتن این فهمیدید یعنی در مقابل رسیدنت به تو دونه هود دونه این کافور در مقابل رسیدن به کافور برخورد کردن با صحراها و قله کوه و جب تا و پیمودم گرماها و شدت گرماها خب الان فکر میکنم دیگه صدا رو دارید شد خب لقیت المرورا و شناخی و او، و شناخی بد تو جهر مرورا و جبت حجیدن یت رو کل ترکه به معنای جعل است. و مفعول اولش، سادیان مفعول دومش. یعنی یجعل الماء سادیان این یه معنا. بعضی‌ها یترکو رو به معنای باقی میگذارد معنا کردن الماء میشه مفعول اول، سادیان میشه حال. درست شد؟ سادیان میشه حال از برای الماع خوب. پس مرورا جمع مرورات یعنی صحرای وسیع بیاب و علف شناخیب جمع شنخوب حتی جمع شنخاب هم گفتن ولی حالا شنخوب مثل شنخوب شنخوب یعنی مثل اصفور جمعش شناخیب مثل اصفور گنجش جمعش ازافی درست شد قله کور رأس که تو یعنی قطع که گفتم پیمودیم، خجیر که گفتیم دم زهره که شدت گرماست سادی که گفتیم یعنی عدشانه نگه من خیلی سختی کشیدم تا به تو برسم آه من صحراها و قل کوها رو در مقابل کافور اخشیری باشون برخورد کردم و پیمودم گرماها را درست شد گرمایی که یک رو داخل یک رو میخوره به حجیر گرمایی که آب رو تشنه میکنه گرمایی که آب رو بگید تشنه و همه تشنگی با آب دفع میشه خیلی مبالغه های کرده ها. یعنی گرمایی که آب رو تشنه میکنه یعنی دیگه اینقدر گرمه که آب هم از گرما تشنش میشه حالا چه برسه دیگه؟ آدم تشن حالا بعضی گفتن آب رو هم تشنه میکنه یعنی آب رو به قول خودمون هرچی آب باشه بخار میکنه بله میبره ولی حالا مبالغه که بکنی آب رو هم تشنه میکنه یعنی به قول خودمون دیگه آب هم تشنگی رو دفن میکنه آب خودش هم تشنست این مبالغه است یعنی اگه آب تشنه بشه دیگه حساب بکنی تشنه چی میشه این دیگه مبالغه کامل خب این یتروکو جملهش صفت برای حجیرن جمله بعد از نکره میشه چی صفت و جبت تو حجیرن و پیمودم گرمایی رو تی کردم در نور دیدم رو که یک رو کل گرمایی یا جرمایی که قرار می دهد آب رو یعنی هر نوع آبی رو قرار می دهد. آب رو تشنه آب رو تشنش می کنه حالا چه برسه به شخص تشنه خب این یعنی من با سختی اومدم رسیدن عشق و علاقه بود که ها امید بود جا بود و الا کسی طاقت اومدن و رسیدن به این سیف و رو به آقای کافور اخشیدی رو نداشته که از طلب بگازه تا بیاد برسه به کافور اخشیدی در استاد لغی تو المرو را و شناخی و دونهو دونهو یعنی در مقابل کافور یعنی برای رسیدن به کافور در مقابل کافور من سهراها و قلنکوها رو پیمودم و جب تا هجیرن. هجیرن یعنی هر رن شدیدن گرمای شدید و گرمای شدیدی رو پشت سر گذاشتم گرمای شدیدی که قرار میدهد آب را تشنه قرار میدهد آب را ش بج نگاه کنید عبا کل تیب لا عب مسکه وحده و کل صهاب لا اخسل قوادیا عبا کل عبا یعنی یا عبا عبا کل تیبه میگه این کافور پدر همه بوهای خوبه همه اعتراست تیب لا مسک، نه فقط پدر مشکه مگه درست کنیهشو رو گذاشتن بهش گفتن ابوالمسک یعنی پدر مسک، مشک نه مشک حالا سلامت دشه. هر بوی خوشی در عالم هست این پدر بوست یعنی بالاتر از وست گرفتید بالا گفت ابلمسک کنیه شد درست شد مثل که به بگیم که پدر نور یعنی نه این پدر نوره بلکه پدر هر گونه بگید فضیلت و روشنایی مثلا آه عبا کل لا ابلمسک این ابلمسک اتفاست به جای ابا اون ابا قبلش یه یا هست یعنی یا ابا کل تیبن ای پدر همه بوهای خوش ای بالاتر از همه بوهای خوش نه فقط بالاتر از مشک بود به تنهایی نه فقط تو بالاتر از مشک هستی به تنهایی نه تو بالاتر از هر نوع بوی خوشی در عالم هست و کل صحابن لا اخستل قوادیا این و کلت جای ابلمسکه یعنی و کل صحابه تو بالاتر از هر عبری هستی آخه انسان کریم رو تشبیه به عبر میکنن یعنی انسان کریم و میگه تو بالاتر از هر عبری هستی و یا کل سحابن لا اخص القوادیا اختصاص نمیدم ابرها رو قوادی جمع قاضیه یعنی عبر پس قوادی جمع قادیتن بر که حالا از غدف گرفته شده دیگه عبریه که صبحگاهان دمدمای صبح این عبر پیداش میشه که خیلی هم باران شدیده که معمولا کسانی که کریمن میگن اینا مثل عبر صوبگاهی هست. مثل که بگم مثل عبر بحاری میگه تو پدر همه بوهای خوشی نه پدر مشک پتنهایی تو پدر همه عبرهایی یعنی همه کریمان آلم نه اختصاص بدم که تو بالاتر از قوادی هستی تو مثلا فرض کن پدر عبرهای صبحگاهی هستی نه نه تو پدر همه عبرهای هستی عبر شب صبح همه نوع عبر. یعنی هر مکرمی کرمی وابسته به توست و کل سهابن یعنی با یعنی یا کل صهابن بعضی اینو کله خوندن یعنی عبا کل صهابن که هم قشنگی حالا اگه کله بخونی میشه یا کل صهابن ای کسی که معادل همه عبرها هستی نه اختصاصت بدم به عبر صحبگاهی قوادی که شعران میگن مثل عبر صبحگاهی میمونه فلان نه ما تو نمیخوام بگم تو مختصت کنم که تو مثل عبر صبحگاهی هست تو مثل همه عبرهای آلم کرمه تو اینطوریه این و کل صحابه یعنی ویا کل صحابه نا اخسلقوادی ها و اختصاص نمیدم فقط ابرهای صبحگاهی را خب این هم مشخص شد دیگه چیزی نداره میگه به تو گفتن عبل مسک. یعنی پدر مشک نه تو پدر همه از و ای کسی که همه عبرهای آسمان هستی نه فقط عبرهای صبحگاهی که شوهرها تشبیه میکنن بعدی رو ببین یودن و به معنا واحد کل و فاخری کلو فاخرن که میشه کلو فاخری وقد جمع الرحمان و فیکل معا نیا عدل ید یعنی ناز میکنه دلال یعنی ناز کردن یعنی میدونه طرف مقابل بهش علاقمنده برش ناز میکنه و قول خود میاد عدل علیه تو لغت برید نگاه کنید عدل علیه مثل که عدل زیدون علی امره و علا عدل علیه یعنی وسقه به محبتی اتمینان داره به اینکه اون طرف بهش علاقه داره و عفت حالی پسی افراط میکنه و روحه براش دوست. ناز میکنه خب به معنی واحد کل فاخری میگه ناز میکنه هر فاخری و آخر فروشی به معنی واحد به یه معنا و مفهومی که در وجود از یعنی یه نفر مثلا نه بلد. به این یه دونه پخ. کاری که بلدی پوز میده هرکی رو میبینی پوز میده یه چیزی داره به یه چیزی که داره پوز میده درست مثلا یک جوان به یک کسی که پیره به جوانیش پوز میده خب خلاصه میگه هر کیو میبینی یه معنای یه صفتی رو داره و با اون داره پوز میده یعنی هر صاحب فخری فخر فروشی میکنه با یه فضیلتی که داره به معنای اما تو چی؟ وقد جمع الرحمان و فیکل معانی ها و حالان که جمع کرده خداوند رحمان در تو تمامی صفات را. معانی جمع از سر خدا همه چی رو به تو داده هر که یه هنری داره به اون یه هنرش ناز میکنه در حالی که خداوند رحمان تمام هنرها رو به تو داده تمام مفاخر رو برات تو قرار داده این معانی جمع معنا یعنی اینجا محل فخر یعنی مناقب فضائل یعنی آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری میگه ما هر که میبینیم میبینیم به یه موضوعی داره پوز میده فروشی میکنه در حالی که خداوند تمام فضائل و مناقب رو همه رو همه رو همه رو در تو قرار داده تو یک دون تنه به اندازه همه اونها فضائل و مناقب داری یودل به معنا واحد کل فاخری و قد جمع الرحمان و فیکل معا خب این هم دیدیم که بسیار زیبا و قشنگ آمد معنا کرد. از کسبان لاسول معالیه. یشکن. از کسبان لاسول معالیه بندا. فا این نکته اتی فی ندا کلم معای عجب چیزی گفت. ازا کسبن ناسو ازا كسب ناسو معالی یعنی بزرگواری ها فضائل مناقب مناقب یه اذا کسبن ناسا معالیه به ندا ندا یعنی کرم جود الان دیگه باید بتونید مهنه میگه معناس مردم پادشاهان چسب میکنن فضائل و مناقب رو با جود و کرم یعنی چی؟ یعنی جود و کرم میدن تا جود و کرم میکنن تا مردم بحبا و چهچه براشون بگن معالی مناقب و فضائل رو کسب کنه میگه اگر کسانی مثل سیف و دوله جود و کرم میکنن تا فضائل و مناقبی به دست بیارن مردم به و چهشه براشون بگن خب فعن نکه جواب ازاس فعن نکه توتی فی ندا کلمه اما تو توتی تو میدهی به مردم المعالی فضائل رو در کرم خودت تو اصلا فضائل رو از خودت منطور تو فضائل داری مناقب داری تو فضائل و مناقب رو به مردم میدی اونها لطف و کرم میکنن درهم و دینار میدن تا فضائل و مناقب بخرن تو به مردم معالی و فضائل رو میدی تو اصلا نیاز نداری نیاز نداری تعریفت کنه تو خودت تعریفی بگید هستی خیلی عجیب گفته ها میگه تو اینقدر خودت فضایل و مناقب داری هرکی تو رو ببینه از فضایل و مناقب تو به او میرسه حالا جود و کرم اگه جوده. اما دیگران پول میدن جود، کرم، درهم، دینار میدن تا مردم متشون کنند. کنن تو اصلا هرکی ببینتت مذهب میکنه تو فضایل و کرام... کرامت ها رو مناقب رو به مردم میدی درست شد در عطا و کرمی که میکنی فضایل و مناقب رو به اونها میدی و اونها رو به اینجا میرسونی دلست شد یعنی تو با عطا کرد تو اگر به یه نفر یه چیزی بدی اون باعث افتخارشه فضایل و مناقب رو به او عطا کردی راست شد؟ قشنگ گفتا چیگاه؟ ازا کسبن ناسو اگه پادشاهان کسب کنن المعالیه یعنی الفضایله فضایل رو به ندا به ندا یعنی به کرمه هم ام ندار الفلام از مضافنه هیه یعنی به کرمه هم به هم. اگر فادو شاهان که اصف میکنند وزایل و مکارم رو با جود و کرمش رو فعل نکه تو اما تو میدی به که میدی؟ اناس به مردم چی میدی؟ المعالی یعنی مفهول دومه معالی رو در کجا میدی؟ معالی رو بی ندار در کرمه تو در کرم خودت بگو ما. کسی که از تو کرمی میگیره فضائل و مناقب رو هم به او میده این می اون رو معرض کن تا از وقتی از تو یه چیزی میگیرن میرن به همه میگن ببینید ما چه ارزشی داشتیم فلانی به ما هدیه داد فلانی به ما سله داد دیگران سله میدن تا مردم برن بگن ببینید این چقدر کریمه چقدر خوبه اینطوری اونجا تعریف شد تو وقتی به مردم میگی فضائل و مناقب رو هم در کرم خودت میدیم اونا تازه مایه افتخارشونه میگه من چقدر ارزش داشتم که فلانی به من هدیه و عطا و کرم داد فلانی به من لطف و عطا کرم خب معفق و معید باشید انشاءالله در پناه خداوند سالم و تندرست باشید ان الله که ایام بر شما خوش و خورم بگذره موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکم.